خب شنوندگان عزیز سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه خیلی خوش اومدید به این برنامه صوتی و این گفتگویی که قرار بین من و یکی از عزیزانی که شاید بیشتر شما بشناسید صورت بگیره خیلی ممنونم که وقت میذارید و بخواید که این برنامه رو گوش بدید با ما همراه باشید خب بهتره که وقت رو تلف نکنیم و بریم سر وقت مهمون عزیزمون خب سلام مهمون عزیز خیلی خوش اومدی مرحمت کردی که قبول کردی به عنوان یکی از کسایی که من خیلی از نوشتنشون لذت میبرم با هم یه گفتگویی داشته باشیم و یک صحبتی بکنیم تا مخاطبان بشتوند و لذت ببرن خب اول اگر حرفی سخنی با مخاطبا داری لطفا بگو که بریم سر وقت گفتگو اول به هم بگو که حالا احوالت چطوره همه چی بر وفق مراده سلام هم به شما هم به هر کسی که این صدا رو وقت میذاره و میشنبه قایش می‌کنم باعث افتخاره خوبه همه چی خوبه خب خدا رو شکر خیلی خوشحالم و خواهش میکنم باعث افتخار منم هست و اگر اجازه بدی کاملا باهات راحت و صمیمی و عادی صحبت بکنم بدون هیچگونه تعرفات و اینجور صحبت ها اگر اجازه بدی خواهش میکنم خواهش میکنم خدمت از منه خیلی خیلی لطف داری تشکر میکنم ازت و خیلی لطف کردی که به این گفتگو اومدی. خب به عنوان اولین سوال ارز بکنم که اگر میشه یک به صورت خیلی مختصر یه بیوگرافی از خودت به من و مخاطبانی که دارن این فایل رو میشنون بدی و چیزی رو تعریف کن که فکر میکنی گفتنش نفوذ به حریب خصوصیت نیست و کاملا تو این زمینه راحت باش. و یه تعریف کلی از خودت بگو برای منوم مخاطبان در حدی که فکر میکنی قابل گفتن هستش و خوشحال میشم بشنوم. الهه هستم. متولد آزابجان شرقی ساکن تهران. 23 سالمه و همین. اوه اوه چقدر مختصر و کوتاه و مفید خب بیشتر سوال نمی که چکار کار میکنی و اینا چون که گفتم تا اونجایی بگو که فقط به حریم خصوصیت وارد نشه چون اصلا دوست ندارم به حریم خصوصیت وارد بشم و کلن حریم خصوصیه که که باشم گفتگو میکنم و نقص کنم اوکی خیلی عالی میتونی برامون بگی که از که شروع کردی و چند وقته که داری می‌نویسی و توی دنیای وبلاگستان فعال هستی برامون توضیح بده از اون روزا اصلا چه روزی بود حال و هواش چطوری بود چند سالت بود هر چقدر که از اون روزا میدونی برامون برای من و مخاطبانم بگو خیلی ممنون بله من از پنج آبان سال 88 شروع کردم دلیل که تاریخش یادم اینه که خیلی منتظر بودم تولدم بشه ولی نتونستم دوازه روز بیشتر صبر کنم بعد اولین روزش همون روز بود که اول در بیرستان بودم او چقدر جالب و بامزه که تو دقیقا میدونی چه روزی شروع کردی و کاملا روزو یادته و میدونی که دقیقا چه روزی نوشتن شروع کردی اکثرا یادشون نیست که کی شروع کردن مخصوصا اونایی که از سال 85 به قبل تر نوشتن شروع کردن کلا یادشون نمیاد که دقیقاً چه ماهی حتی شروع کردن فقط میتونم بگم حدودم مثلا سال 81 82 اینا بود یا 83 یا هرچی و خیلی تعجب کردم که کاملا میدونی که کی شروع کردی این قضیه رو خیلی خوبه یعنی شدم آبان 1388 هنوز اون اتفاقات عجیب غریبه سال 88 و پرش بعضی از وبلاگ ها رو که یهو وبلاگ ها ناپدید شدن و یک جو خیلی سنگینی که یه مدتی پیش اومد یعنی سال 88 آبان هنوز اتفاق نیافتاده بود خیلی خوبه خوب تایم شروع کردی یعنی هنوز جو کاملا آروم بوده چون از خوردادش دادش خیلی وضعیت وبلاگ ها مخصوصا سایت بلاگ فا خیلی به هم ریخت و نمیدونم یادت میادی یا نه خب میتونی بیشتر از اون حال و هوا و کلن از اون روزا برام بگی؟ من یادمه که اون زمان خب بیشتر خاطره و چیزایی که به نظرم با مذابود رو مینوشتم الان هم بیشتر همون کار انجام میدم طبعا هم ویبلاغ هایی رو میخوندم که اونم هم تو همین موضوع بودن. و روزان نویسی و خاطره‌نویسی و اینا داشتن با اون اتفاقات عجیب غریبی که میگی خیلی درگیر نشدم و یه گروهی بودن که خب خیلی صمیمی بودن، از قبل همه همدیگر رو میشناختن، توی سایت دیگه ای با هم آشنا شده بودن و من هم وارد اون گروه شدم، اکثرا وبلاگ اینا رو می اما خب متاسفانه بعد از دو سه سال یواش یواش همشون غیر فعال کردن وبلاگشون رو، دیگه ننوشتن و خب بعد از یه مدت هم که من وارد بیان شدم مهاجرات کردم به بیان اوائل توی پرشین بلاک می‌نوشتم. چقدر جالب منم شروعم توی پرشین بلاک بود یادم نمیره خیلی خوبه که تو اون اتفاقات و جریانات نبودی و خیلی هم خوب یادته آره اون سالا من یادم میاد بیشتر نویسنده ها توی فورما بودن توی انجامنه ها بودن تاپیک میزدن با هم دیگه بحث میکردن و خیلی فضای سمیمی ایجاد شد بین بچه ها و بعضی وقت‌ها اینا با هم بیرون قرار میذاشتن همدیگه رو می‌دیدن و آشناییت خیلی سمیمی بود و خیلی خوب بود بیشتر بود من خودم چند بار رفته بودم دیده بودمشون آره منم به نوعی خاطرات برم زنده شد از این جهت چون بودن کسایی که از فروم‌ها به وبلاگ اومده بودم و خب کانکشن وبلاگ‌هاشون به هم دیگه متصل بود با هم دیگه دوست بودن خیلی عالی خیلی خوب قسمتی که خیلی تلخه اینه که خب دیگه اونها فعال نیستن و نیستن یا خاموش شدن و خب منم داشتم از اینجور عزیزان و دوستان ولی خب خیلی خوبه که ظاهرا تو بلاکفا رو ندیدی مثلا پرش کردی از پریشین بلگ پریدی به مستقیم بیان و تو بلاکفا نبودی پیشن بلاگ هم خیلی مشکلات داشته بار دامینش پرید. یادمه اول تو پیشن ما می نوشتیم بعد که مثل که دامنشون خراب شد و اینا حالا دیگه کاری نداریم. حالا به طور تخصصا و مخصوص به اون دوستایی که دیگه نیستن و نمی نویسن به طور کامل میپردازیم ولی سوالی که برام پیش اومد اینجا اینه که دوست دارم بتونم حس و حالت اون تایم اون زمان چه شکلی بوده، چطوری بوده، چطوری حدودا فکر می کردی نوع افکارت چطوری بوده دوستانم بیشتر از این جهت از این حالا هوا ازت بپرسن و بدونن که اون زمان چطور فکر می کردی اون زمان یعنی برایت اصلا چه معنایی داشت و اینکه اصلا چطوری فهمیدیه چنین دنیایی وجود داره و از آیا کسی بهت معرفیش کرد یا خودت توی اینترنت پیداش کردی یا توی مجله خوندیش اینها رو بیشتر برام توضیح بده و بگو میخوام بدونم که آیا کسی بهت معرفی کرده یا خودت دنیای ها رو کشف کردی و اومدی و کلا از اون حال و هوا و اون تفکرت از اون روزا برام بگو یه دوستی داشتم توی دبی که یه روز بهم گفت من وبلاگ دارم بعد منو تشویق کرد که وبلاگ بزنم بعد منم رفتم وبلاگش رو خوندم خوشم اومد و دیدم که چقدر جالب که میشه یه جایی چیزایی نوشت که بقیه بیان بخونن بدونین که بشناسنه خب اون موقع شبکه اجتماعی اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک و اینا خیلی حتی برای من مطرح نبود برای همین خیلی به نظرم جالب بود بعد خوشم اومد و تقریبا میتونم بگم مهمه با ویبلاغ نویسی آشنا شدم و آبام وبلاگم رو زدم خیلی خوبه آره من از سال 86 اینا فیسبوک داشتم و خب از این جهت خیلی نقطه و نکته مثبتیه که تو بدون اینکه که با فیسبوک آشنا بشی و کلان وارد دنیاش بشید مستقیما وارد یه جای خیلی شیک و با کلاس و تخصصی شدی و نوشتن رو شروع کردی خیلی خوبه و ما از اینجا میگیم که دمون دوستت گرم که اینا رو به احتياط که تو در نهایت در آبان ماه وبلاگت رو باز بکنی و نوشتن رو شروع بکنی ولی آره اون تایم فیسبوک بود و خب تو گفتی که فیسبوک رو ظاهرا چیزی که من اول فکر کردم می‌خواد بگی نیست ولی گفتی که خب تو زیاد با فیسبوک اینا میونه‌ای نداشتی و اینا مثلا کلاً دنبالش نبودی خب خیلی خوبه خیلی خوبه که آدم با وبلاگ شروع کنه بجن که اول با فیسبوک شروع کنه منم اول با وبلاگ شروع کردم به خاطر که اون موقع اصلا فیسبوک نبود واقعا بعدا عضو فیسبوک شدم اونم به خاطر اینکه دوستام توی مدرسه هم عضو فیسبوک بودم. مجبور شدیم یعنی توفیق اجباری شد اکثرا هم خاطرات مدرسه رو توش نوشتم. و شاید دنباله این بودم که چیزایی بنویسم هم خودم یادم بمونه هم بقیه بخندن اینجور چیزا نه که بخوام تفکر خاصی رو تو ویبلاگ هم منتقل کنم مثلا پس کلا زده بودی تو کاره تنزهای دبیرستانی رو تنز می نوشتی که بچه ها بخندن خیلی خوبه بعد با اون دوستی که تو رو آشنا کرد با ویبلاگ و بهت گفتش چیه و کلا تو رو وارد این دنیا کرد های هنوزم دوستی و هنوزم باش ارتباط داری های هنوزم می نویسه یا نه اونم خاموش شد و برای همیشه رفت بعد از یه مدت ارتباطمون قطع شد بعد از دبیرستان و اینکه احتمالاً هنوز هنوزم می نویسه ولی من آدرس وبلاگش رو ندارم ولی که تونتون عوض می کرد رو اون زمان هم خیلی آدرس عوض می کرد. پس خوبه ممکنه نویسنده باشه هنوز ولی خب تو وبلاگش رو نداشته باشی چون آره بعضی بودن کلن آدرس زیاد عوض می کردن کلن یا خسته می شدن یا نمیدونم. آشنا پیداشون میکرد و اینا زیاد ادعاست سبز میکردن یادمه خب پس ظاهرا تو رو یه وبلاگ میسه حرفه‌ای وارد این دنیا کرده و بعد تو در سال 88 اولین نوشتت رو در آبان ماه آنلاین کردی اون زمان که تو با بقیه وب‌ها در ارتباط بودی و خب مسلمان می رفتی نظر می دادی یا می اومدن برات نظر می دادن. خب آدم وقتی که یه سری نظراتی رد و میکنه و یه سری تماس های رد و میشه می یک شخصیت کاملا سطحی و کلی از اون آدمی که داره باهاش ارتباط برقرار میکنه یا به قانون معروف اون آدم رو دوست خودش می دونه تو ذهن آدم شکل می گیره برای مثال خود خب من میدونم مثلا شخصیت خود تو به عنوان کسی که دنبالش می کنم کلیاتش چه شکلیه شاید جزئیاتش رو ندونم و ندونم تو دقیقاً چطوریه ولی خب با توجه به یه سری کامنت ها و یه سری صحبت هایی که داشتیم یه کلیاتی اطلاعات ازت دارم و خب اون زمانم مسلماً تو وقتی که تبادل نظر این اتفاقات افتاده یک دید کلی از شخصیت اون مخاطبای اون موقع داشتی اگر بخوای اون اون آدما رو و اون فبلاگ نویسا رو با آدمای امروز و فبلاگ نویسای امروز مقایسه کنی، به لحاظ اون شخصیته فکر می‌کنی آیا تغییر کرده یا نه؟ همونطوری ثابت مونده؟ همون طوری که اون موقع بودن الان هم هستن یا نه؟ بهتر شده؟ بدتر شده؟ میخوام کلیات صحبت کنی. یه دونه یه چیز کلی به هم بگی. نظرت در مورد چیه فکر می‌کنی عوض شده نشده خب من والد گروهی شده بودم که خیلی با هم صمیمی بودن همدیگر رو میشناختن حتی قرار گذاشته بودم بیرون همدیگر رو همه دیده بودن و خیلی احساس کردم که از همون اول خیلی تحویل گرفتن منو اما خب بعد این مدت که اونا رفتند و من مهاجرت کردم به بیان طول کشید تا این فضا دوباره به وجود بیاد شاید توی یک سال گذشته من تونستم چندتا دوستی که بتونم به اندازه اون موقع بهشون بگم صمیمی پیدا کنم جمله بندیم عالی شد و خب تا یه مدت خودم هم خیلی علاقه نداشتم ارتباط زیاد برقرار کنم بیشتر دوست داشتم یه جای خیلی خصوصی باشه که هرچی دلم دلم و بنویسم چون قبلا برام پیش اومده بود که چند تا آشنا و رو پیدا کنن و خب من دوست نداشتم این اتفاق بیفته اما توی یه سال گذشته خب با خیلی‌ها دوست شدم خیلی جا بیشتر کامنت می‌ذارم و خب الان میتونم بگم فضای بیان رو هم به اندازه اون سال اول پرشینبلک دوست دارم اوکی okay, اوکی okay. پس اینطوری که گفتی پس الان وضعیت بهتر شده و چیزی که من دریافت کردم اینه که به نسبت قدیم یه مقداری دیر دیرتر می ولی دقیقا همون که ظاهراً کیفیت. بیشتر راجع بگو یعنی حالا متوجه شدم که تقریبا میگی علاوه شخصیتی شخصیتی هم چون در نهایت گفتی که من دوباره تو بیان همون آد... این آدمای جدیدی رو که میبینم به اندازه همون موقع که تو پرشال بلاگ بودم به همون اندازه دوست دارم ولی از جهاد دیرجوشی عرض میکنم میخوام ببینم واقعا فکر میکنی فضای وبلاگ امروز و وبلاگ نویسا توش کمی دیرجوشن یعنی با بقیه دیرتر می جوشن یا نه اصلا نمی جوشن یا حداقل انتخابی می جوشن. چون من فکر می کنم که بعضی ها اصلا کلا دوست ندارن که دوست جدید داشته باشن کلا با کسی کانکت باشن به اصطلاح بجوشن یا هم که انتخاب میکنم میبینم می, می بینم مثلا با کی این اینتراکشن و این به قول معروف دوستی رو این تامل اجتماعی رو داشته باشن یا نداشته باشن فکر میکنی. موافقم هم کمتر میجوشن همین که یک هم سختتر شده. بر اینکه قبلا مثلا اگه وبلاگ بود اه، آدم های مختلف با عقاید مختلف بودن توی محیط وبلاگ ولی الان انگا که شبکه های اجتماعی اومدن دستبندی ایجاد کردن مثلا اکثر افرادی که وبلاگ دارن خیلی از عقایدشون با من نمیخونه خب طبعا من نمیامون عقایدمو ابراز کنم بنویسم و با اونها هم شاید کمتر ارتباط برقرار کنم نسبت به قبل این به نظرم تغییر ایجاد شده آره خب باعت موافقم و متوجه شدم تو. الان اصلا این دستبندیه اولا این که خیلی ناجوره و خیلی کاملا قابل رویت دستبندیه همه جا هست اولا این که آدم وارد خودسانسوری میشه و سعی میکنه همه اطلاعاتو و همه افکاری که داره رو نگه و خب یه مقداری از این جهت یعنی ارتباطات در اصل میاد کوچیک میشه به اندازه اون میزان اعتقادات و افکار یعنی فرای اعتقادات و افکار و تفکرات آدم‌ها نیست یعنی میاد محدود میشه تو همون اندازه شاید هم البته بستگی به این داره که چون تازگی ها این شخصیتیه که ما تازه بهش رسیدیم اینه که تازگی ها کلاً زورمون میاد کسی نظر مخالف ما رو داشته باشه مثلا من یه خواننده‌ای رو دوست دارم یه کسی میاد از خواننده انتقاد میکنه سریع جبهه میگیرم میگم تو اصلا به چه حق این حرفو زدی یا بالعکس یه کسی دیگه یه خواننده‌ای رو دوست داره من میرم یه چیزی میگم خیلی از این جهت هم ما کلاً فکر می‌کنم خیلی حساس شدیم و تحمل اینکه یه کسی ممکنه با ما مخالف باشه خیلی سخته ولی در مورد دیر جوشی با بیانیها من میتونم یکمی با نظرتو مخالف باشم چون من فکر میکنم علتش اینه که بیانیها ها یه مقداری مغروره ف... صرفا به خاطر اون تفکر و افکارش نیست که مثلا چون یکی به یه شیوه فکر میکنه من با این دوست نمیشم کسی که به این شیوه فکر میکنه من باش دوست میشم. حالا نه تو level دوست کلا تو level اینکه این که با هم داشته باشن ارتباط داشته باشن تامل داشته باشن اینی در کنار هم مصالمت آمیز به بدهستان های که اصطلاح میشه گفت تعامل اجتماعی داشته باشن به کل. ولی من فکر میکنم که بیشتر این قضیه ارتباطی به اینکه چطور فکر میکن نداره. و بیشتر اینه که من نظرم اینه البته که بیانی مقداری اضافی معغروراً یعنی احساس غرور میکنن همیشه فکر می مثلا شعنشون نیست که مثلا بیام بجوشم با کسی دیگه امیدوارم منظورم رو رسونده باشم البته نمی‌خوام این گفته رو خیلی خال زنکی کنم و بگم اینجوری اونجوری ولی تجربه که من داشتم چون من سال 91 در اسب بیان با دوتنامه اومدم و خب به من ثابت کرد که این تجربه که مثلا گاهن کسی کسی رو در حد خودش نمیبینه که مثلا باش ارتباطی بگیره یا با اصطلاح بجوشه درسته؟ نه من با این مغلول بودنه خیلی موافق نیستم طبیعیه که آدما به افلادی که تازه وازاده محیطی شدن حالا محیط محیط وبلاگشونه دیرتر اعتماد کنن ولی خب من خیلی شنیدم که فلانی مثلا خوب جواب نمیده بد برخورد میکنه ولی این اتفاق برای خود من اصلا نیافتاده من هر جا که کامنت گذاشتم احساس کردم باهم خیلی هم خوب برخورد شده یا حداقل بد برخورد نشده در مورد تحمل مخالفان من فکر میکنم که خب بالاخره هر کسی عقیده ز تعقید خودشو بشنوه ممکنه تو اون لحظه یکم عصبی بشه ولی خب کافیه که یه مقداری صبر کنیم بعدا جواب بدیم خب برای خود من پیش اومده حتی پیش اومده که یه نفر بیاد تو کامنت ها مسخرم کنه من کامنتو ببینم ولی فکر کنم که خب حالا بذار بعدن یه جواب مناسب پیدا میکنم و مثلا 10 دقیقه بعد برگشته باشم و طرف کامنتشو پاک کرده باشه عوض کرده باشه خب یعنی اینکه خودش هم متوجه شده که کارش اشتباه بوده من به نظرم یکم بعد تحملمون بالاتر ببریم الهی عزیز البته این بستگی به خیلی شرایط دیگه هم داره ها حالا من خیلی نمیخوام م... مسئله رو باز کنم خاله زنکیش کنم ولی فکر می کنم چون صرفا مثلا من نوعی همچین تجربی رو نداشتم دلیل نمیشه که همچین چیزی وجود نداشته باشه چون من اینو تو این مدت خیلی دیدم و تجربه کردم این نظر شخصی منه خب آخه چرا ما بعد وقتی که مخالف عقیده خودمون رو بشنویم عصبانی بشیم اه... چون بحث وجود داره انسان نشسته فکر کرده و به این نتیجه رسیده که بحث کنه و وقتی که بحث وجود داره فکر کنم مثلا عصبانیت یه حرکت خیلی چیزیه خیلی خندداری که آدم با وجود اینکه که بحث وجود داره آدم وقتی که نظر مخالفشون میشته به عصبانی بشه از این جهت خب خیلی وضع ما خرابه ولی خب با این معقوله که خب مسلمان به تحملمون ما رو بالا ببریم و عوض بشیم تحمل کنیم حرف مخالفمون خب قبول دارم تو. و سوال من اینه که خب این بیعتمادی از کجا میاد من منظور من چیز نیست این که مثل این که منظورم رو بد رسوندم ببین غرور وجود داره توی یک تعامل اجتماعی یه حد وجود داره وقتی که طرف یه کامنتی رو برای اولین بار میذاره خب یه پیش زمینه توی هیچ کدومشون وجود نداره چون همدیگه رو نمی‌شناسن. اون نظره برای اولین بار گذاشته شده. توجه می‌کنی اون شخصی که خب نظر رو دریافت کرده میتونه کاملاً اوکی با احترام با اینکه اون جایگاه طرف مقابل رو حفظ کنه با بنظرش پاسخ بده. ولی متأسفانه دیده شده حتی تو کامنت‌های اول احترام افراد نگه داشته نشده در صورتی که اون آدم اونطوری که مثلا یه موقع از کسی حرفی میزنه طرف در جوابش یه جواب تند میده ولی دیده شده اصلا تو کامنتن قضیه وجود نداشته ولی خب پاسخه خیلی پاسخه از نگاه بالا به پایین بوده انگار مثلا خیلی باعث کسر شنی پاسخ دهنده است که به این نظر پاسخ داده وقتی که ما تحملمون رو بالاتر ببریم با هم دوستای خیلی خوبی باشیم ولو اینکه افکارمون یکی نباشه چون این سطح تعمق بالا رفته این دوستی که به وجود میاد کاملا فراتر از این میره وای میسته که ما چه تفکری رو داشته باشیم یعنی تفکر نمیاد یکی از المان های دوستی قرار بگیره تفکر پایین میمونه و دوستی میره بالاش و فراتر وای میسته از این جهت خب خیلی مثبته ولی توی اولین کامنت دیده شده که بدون هیچ پیش زمینه این نگاه بالا به پایین بوده من چند بار اولین که با خودم این رفتار شده و چندین بارم دیدم که با خیلیا این رفتار شده و هست همچین چیزی ببین به نظر من بی‌اعتمادی خیلی چیز طبیعیه انگار که مثلا یهو یه نفر تو خیابون بیاد با شروع کنه صحبت کردن خب با خودت میگی این از کجا اومده چی میگه از کجا معلوم بعدن یه آسیبی به من نرسونه خب حالا حساب کنیم توی فاز وبلاگ اتفاق میفته مثلا خود شخص من تا همین چند وقت پیش هشت سال آرشیبی داشتم که هر کسی میتونست بهش دسترسی داشته باشه یک عالم اطلاعات میتونست از اون آرشیب داشته باشه و خب من چرا باید با کسی که نمیشناسمش و این همه اطلاعات از من داره اعتماد کنم همون توی برخورد اول باش. سمیمی برخورد کنم به نظرم یکم طول میکشه و خب طبیعیه ولی بی احترامی خب فرق میکنه من میتونم به آدم اعتماد نداشته باشن به ایچ ولی در این حال باش با احترام صحبت کنم نه عزیزم من منظور من این نبود ببین آره خب این بی این که به صورت دیف بای دیفالت ما وجود داره حرفی توش نیست آدم خب وقتی یکی تو خیابون میاد و به قول معروف رد میشه یا با ما یه سلامی میده ما نمیتونیم به اون 100 درصد اعتماد کنیم از این جهت حرفت قبوله ولی منظور من این نبود منظور من اینه که توی اولین برخورد این احترامه زیر سوال میره و نگاه شخص از نگاه بالا به پایین هست بعدم منظور منو مثل اینکه من منظورمو بد رسوندم توی ارتباط اول شما که هیچ بکگراندی از طرف مقابلت نداری دارید خیابون را میری یه نفری میاد میگه سلام مثلا من مثلا فلان نظرات هم همینه مثل ارتباط برای اولین بار آدم هیچ پیش زمینه ای به طرف مقابل که نداره پس حداقل توی اولین ارتباطش میتونه خیلی محترمانه صحبت بکنه و نگاهش از بالا به پایین نباشه منظور من اینه بعدم انتظار من این نیستش که مثلا منظور من اصلا این نیستش که طرف تو اولین کامنت آدما بیان با همدیگه دیگه سری دوست بشن نه منظور من این نیست منظور من اینه که وقتی که یک تعامل اجتماعی برقرار میشه وقتی که یک نظری یا فیدبکی رد و بدل میشه توی این ارسال و پاسخش یه سری اتفاقاتی میفته که پاسخ دهنده میره بالا وای وای میسته و اون جایگاه شخص نظر دهنده رو به نوعی رعایت نمیکنه حالا این دراיית نکردنه به هر حالتی میتونه باشه میتونه اصلا با ندیده گرفتن اون نظر اتفاق بیفته چون که ما پیش زمینه ای نداریم یه موقع هستی که میاد یه صحبتی میکنه یه مدتی میگذره تعدادی تبادل اطلاعات رد و بدل میشه بعد یه شخصیت کلی آدم به دست مییاره و میفهمین آدم قابل اعتماد نیست یا قابل احترام نیست اون وقتی که آدم میتونه آه... کار خودشو بکنه و راحت آه... حالا جایگاه طرف رو البته بازم میگم جای باز آدما جایگاه خودشونو دارن و ما به عنوان کسی که داریم یه تعدادی مخاطب رو مخاطب قرار میدیم یه مقداری بعد از این جهت کوتا بیایم ولی و احترامشونو نگه داریم ولی وقتی که پیش زمینه وجود نداره آدم نمیتونه بگه که خب چون پیش زمینه وجود نداره پس احترامم نباشه اینطوری نیست مثل اینکه خب مثال خودت که توی خیابون وقتی که کسی شروع به حرف زدن میکنه شما تو حرف اول که باهاش با قیافه و بی محلی صحبت نمی کنی مثلا فکر کن کسی بیاد ازت بپرسه خانم محترم سلام شرمنده وقتتون رو میگیرم میشه به من بگید که ساعت چنده یا مثلا میشه به من بگید خیابون فلانجا کجاست تمام اجتماعی وقتی درست برقرار میشه که شما باید بگید شرمنده من عجله دارم اگه میشه از کسی دیگه بپرسید یا بعد بگی ساعت ندارم فکر کنم حدودای ساعت دو باشه ولی اینکه طرف این سوال محترمانه ازت بپرسه یا اصلا نه خیلی هم انقدر محترمانه مثلا بیاد بگه خانم مظفر بخوام ساعت چنده بعد شما یا اینو نبینی بی محلی کنی رد شی بدون اینکه جوابی بهش بدی یا اینکه با توهین این کار انجام بدی مثلا بگی گم شو بابا تو کی هستی که مثلا از من ساعت میپرسی این منظورم اینه توی اولین مکالمه که این اتفاق نمیافته. من منظورم اینه تو اولین مکالمه این اتفاق میفته و یه نگاه بالا به پایینی وجود داره و وقتی که آدم یه کسی میاد ازت ساعت میپرسه خب تو یه به قول معروف محل میذاری یه دونه به قول معروف درست جواب میدی دوست نمیشی باهاش نمی جوشی باهاش ولی حداقل در حد پاسخ دادن به اینکه ساعت چنده یا فلان خیابون کجاست محترمانه جوابش رو میدی نگاه از بالا پایین مثلا نمیایی بگی ای بابا دیگه همه دعاتی ریختن مثلا تهران خیابون ها رو بلد نیستن اینطوری جوابشو نمیدی. این نمیدی اینم همینه طبیعتن وقتی کسی میاد اولین باری همچین نظری رو میده یا یه سوالی میپرسه یا هرچی و اخری یه حرفی میزنه این نگاه در پاسخ نگاه خیلی زشت و از بالا به پایینیه یعنی با وجود اینکه صمیمیت هم وجود نداره و ولی آدم باید در نهایت به هم احترام بذاره حتی توی اولین کامنت و اینکه آدم هیچ بکگراندی هم از طرف نداره توجه می‌کنی منظورم اینه بله منم با این موافقم و اگه همه بتونن همچین چیزی تو خودشون ایجاد کنن از جمله خود من هم روابط خیلی بهتر میشه هم دعوا ها کمتر میشه و کللا همه چی خوب میشه نه فقط تو فاز وبلاگ همه جا بله خب منم منظورم همینه دیگه اگر همه رایت کنن اون وقت ما خیلی وضعیت بهتری خواهیم داشت و خب دوستی های خیلی قویتری خواهیم داشت خب این هم برخورد اون آدم بستگی داره همین که به تعریف ما از محلی شد من خیلی عادی جواب بدم من خب توی نوشتار واقعا لحن آدم مشخص نیست من ممکنه خیلی عادی و با لحن روزمرهی خودم بنویسم و یه نفر اون کامنت رو توی حالی بخونه و فکر کنه که این چقدر بد داره صحبت میکنه چقدر بد داره مینویسه یا یه لحنی رو برای من متصور بشه خب این سوه تفاهم ها پیش میاد نه عزیز حرفتا قبول دارم. آره درسته. ما توی متن نمیتونیم لحن متوجه بشیم ولی عرض من اینه که زمان قدیم هم این نظرات رد و بدل می شود. ولی چرا در زمان قدیمی سوء تفاهمات پیش نمی اومد با این قسمتش مخالفم چون آدم درست لحن وجود نداره ولی کاملا از نوشته در 90 درصد مواقع مشخص میشه که این نوشته هایا یه نوشته عادیه یا نه نگاه از بالا به پایینه یا نگاه از نشد گرفته از قروره عرض میکنم خدمتت که من با این قسمت حرفت مخالفم چون زمان قدیم هم باز نوشتار بود یعنی زمان قدیم ما ویس به هم نمیدادیم اون موقع هم نوشتار بود الان هم نوشتاره پس چرا اون زمان من نوعی همچین حسی نداشتم که پاسخی که از این کامنتی که گذاشتم دریافت کردم پاسخ خیلی بالا به پایین نبوده اصلا یه همچین من از سال 93 به بعد یواش یواش دیدم که تو پاسخ نظرات ببخشید از 94 به بعد و روز به روزم داره بدتر میشه تو پاسخ نظرات من متوجه شدم که کاملا نگاه از بالا به پایینه از سر قروره مثلا در سطح خودشون نمیدونم پاسخ بدن این طوریه بعدا من توی چندین نظر و ارتباط میام به نشون میدم که آدم قابل اعتمادی هستم ولی باز توی نوعی نمیای با من اون ارتباط مخصوص و احترام مخصوصه رو برقرار کنیم بلکه میای توی پاکت. یه چیزایی رو میذاری یعنی یه نوع تحقیرایی رو توی لفافه به اسطلاح توی جملاتت وارد میکنی و اون رو به من منتقلش میکنی من منظور من اینه منظورم این نیست که مثلا همه تو اولین انترکشن شروع کنن رفاقت و سمیمیت ولی خیلی من دیدم که حتی چه تو اولین نظر و تو چه تو مثلا 20 نظر کلا اینا نگاهشون از بالا به پایینه کاملا هم تو پاکت تیکه میندازن تاخیر میکنن و خب مورد خشونت قرار میدن بنوئی خیلی دیدم و مسخره میکنن حتی و خب متاسفانه همچین چیزی توی دنیای وبلاگستان هست از سال 94 به بعدم دیگه فیلم کنم 93 اینا شروع شد و الان دیگه فیلم کنم تو اوجشه وضعیت خیلی بده مثلا کلا یه غرور عجیبیه دیا مثلا از چی میگن از سلطان کمتر به من نگید یه همچین چیزی خوشبختانه من تا با همچین چیزی برخورد نداشتم نمیتونم این انکارش کنم ولی شخصا برخورد نداشتم بدم از طرفی به نظر من این روزا وبلاگ صمیمیت اون موقع ها رو نداره وبلاگ نیستا خیلی زیاد به هم میپرند. تیک به صورت کاملا ناخوشاگاه سازی میکنن و هر کسی به یه باندی سلام علیک بکنه اون یکی باندهایی رو با میکنن نه اینکه مثلا یه گروهی جمع بشن باند درست کنن نه به صورت ناخداگاه که میشه گفت به نوعی یه تفکر خاصی وبلاگ نمیساش جمع شدن یه جای باند درست کردن یه باندهای نامرئی نه باندهای از پیش تعین شده باندهایی که خود به خود به وجود اومدن مثلا یه گروهی شده من و علی و رضا و محسن یه گروه شده مثلا مثال بزنم میلاد و رضا و مثلا علی و زهرا مثلا همین جوری باند باند بعد یک شخصی که وارد این فضای به نظر من مسموع میشه نمیدونه باید چی کار کنه میاد به این گروه سلام میده بقیه اون باندا برمیخوره یا بایکوتش میکنن دیگه چه میدونن محلش نمیذارن و این فوجی ای نویسی امروز ماست اصلا کلا فاجعه فضای مجازی ماست فکر می‌م موافقی با من با این نظر من در مورد باندای بیان یه چیزای شنیدم ولی خوشبختانه برخورد و زیادی باشون نداشتم شاید وارد چند تا باند نشدم کلا چون یکیشون بودم نمی‌دونم نه, نه نه نمیگم باند وجود داره و آدمو میتونن وارد باند بشن گفتم یه سری باندهای خود به خود به صورت نامرئی به وجود اومده شاید برخورد داشتی حواست نبوده مثلا رفتی تو یه باند دیگه نظر دادی بقیه باندها با کردن بعد رفتی تو وبلاگ اون یکی باندهای مثلا مخالف اون باندی که قبلا نظر داده بودی نظر دادی اینه مثلا محلت نذاشتن با ایکوتت کردم و کلن تو متوجه نشدی قضیه از چه قراره ولی من با خیلی که صحبت کردم کاملا متوجه شدم که این قضیه کاملا باند بازی یکی از دوستای من که از دنیای وبلاگ نویسان خداحافظی کرد رفت کاملا به این موضوع اشاره کرد و گفتش که متاسفانه توی وبلاگ نویسی امروز قضیه باند به صورت, به صورت کامل وجود داره ولی اون عقیده داشت که این باندا پشت سر با همدیگه در تماسن و به صورت حرفی بان باند درست کردن که من با این قسمتش کاملا مخالفم و فکر نمی کنم وبلاگ هنوز انقدر شنش پایین اومده باشه که همچین وضعیتی داخل شاهد باشیم ولی میگم یه سری تفیل یه آدمایی که تفکرات چون حالا شبیه همه یه گروه چی میگن چی میگن پیوند برادری ناخواسته همچین چیزی درست شده که عمدی نیست غیرعمدیه مثلا در همجوری درست شده چون حالا فکرشون شبیه هم بوده. بعدی باند نامری اینجا اتفاق افتاده که حتی شاید خودشون هم ندونن دارن با کار باندی میکنن ولی متاسفانه بله هستن و کار باندی میکنن این ظاهرش اینطوری دیده میشه آره هستش و شاید تو متوجه نشدی یعنی حواست نبوده و خب هست به نظر این اتفاقی که داره میفته شاید ما قبلا تو اتوبوس هم یه نفر رو میدیدیم خیلی راحت باش صمیمی میشدیم تا امروز اعتماد کم شده اتفاقی که جامعه داره میفته خب توی وبلاگ ها هم میافته. دلیل نداره که این اعتماد کردنه و اینا رو با قبل بخواییم مقایستش کنیم ولی خب در هر صورت این مشکلات امروزه دنیایی وبلاگ نویسیه ولی خب یه سوال کلی تر ازت بپرسم به نظر تو اصلا ولی ها باید با هم دوست باشن؟ یا نه صرفا فقط خواننده هم دیگه باشن و تبادل نظر کنن و اطلاعات بگیرن و بدن و فقط در این حد و دوست بودن خیلی زیادیه بیش از حد نظرت چیه نه به نظرم واقعا باید با هم دوست هم باشن نه که صرفا خواننده باشن خب من اگه قرار بود که یه متنی رو بنویسم و صرفا بخوام چند نفر بخوننش یا ایادات اون متن به بهم بگن میرفتم توی سایت ادبیات مثلا عضو میشدم ولی خب من وبلاگ می‌نویسم شاید خیلی چیزایی رو بنویسم که مثلا نزدیکترین افراد خانوادم هم خیلی ازش خبر نداشته باشم و خب انتظار دارم مثلا یه نفریم مطنوب بخونه و با هم, هم دردیکنه شاید تجربیاتش رو در اختیارم قرار بده و این من اسمشون نمیذارم صرفا خواننده بودن به نظرم این دوستیه آره آره درسته منم میتونم با موافق باشم کاملا می دوستی اصلا فضا رو تلتیف میکنه و قشنگ میکنه. بدم شاید یکی دلایل دیگه این مشکلاتی که وجود داره تظویر و ریا باشه یعنی چی یعنی توی یه محیطی که تظویر و ریا به وجود اومده آدما چیزی نیستن که میگن و طور دیگه‌ای رفتار میکنن که اون رفتار رفتاره رو نگفتن تا حالا به نظرت نظر درباره این چیه فکر میکنی اصلا این تظویر و ریا وجود داره و فکر میکنی این دامن زن به این مشکلاتی که قبل تر عرض کردم یا نه به نظرم من اگه بخوایم مقایسه کنیم که واقعا جا هم داره که مقایسه کنیم توی وبلاگ ها آدم ادم‌ها خیلی بیشتر خودشونن نسبت به مثلا اینستاگرام و توییتر و خیلی جاهای دیگه درسته شاید پیش بیاد چهل نفر بیا تو وبلاگش هم دروغ زیاد بنویسه یا چیزایی بنویسی که واقعیت ندارن ولی باز به نسبت جاهای دیگه کمتره اما نمیتونم بگم که نه این وارد نشده خب به طب یه نفعه اگه ببینه که چند تا ویبلاگی رو دنبال کرده و مدت مطالبشون رو خونده و بعد متوجه شده که دروغ نوشتن خب درسته بعدم به افراد دیگه کمتره تماد. آره آره با این حرف درسته باش کاملا موافقم ولی بازم میگم منظور من از تصویر اینه که مثلا من توی یه دونه پستی با محاطبان با ادب صحبت میکنم ولی میخوام خوام ترش رو بگم بهت یعنی اون مثالی که بهت زدم مثل این که بد زدم ماجرا تجربه ای که من مثلا میام توی یکی از پستام با ادب و کمال صحبت میکنم کامنت ها با ادب میدم ولی پشت سر توی نظرات خصوصی که هیچکس نمیبینه یا توی چت هایی که حالا تو گروه ها هستش میان با بیادبی و بی احترامی صحبت میکنم میان مثلا یه شوخی های میکنم که جاش نیست اندازش نیست و کلن اذیت میکنم یه نمونه از این ریای اینه یا مثلا من توی وبلاگم خودم یه طوری نشون میدم که من واقعا انسان خیلی با فرهنگی هستم ولی توی یه سری شرایطی یه اتفاقاتی میفته توی قسمت خصوصی جایی که هیچ کس نمیبینه فقط یه نفر دو نفر هستن کاملا عکس اینو نشون میدم. و اینکه انگار این این منظورم از ریاضت تصویر اینه بعدم انگار محیطی طوریه که انگار هیچکس از هیچکس خوشش نمیاد انگار مثلا دیگه مجبوریم همدیگه رو تعامل کنیم دیگه نمیتونیم حذف کنیم چون بالاخره دنیای وبلاگ دنیاییه که خب نمیشه گفتش آقا تو ننویس تو برو چی میگن توفیق اجباری دیگه مثلا آدم هستن نمیشه حذفش کرد پس مجبوری اجتناب ناپذیر دیگه آدم مجبور تحملش کنه نظر تو در این رابطه چیه اینو بهم این جواب بده بعدش میخوام یه سوال خیلی کلی ازت بپرسم به نظرم آدم‌ها وقتی کامنت‌ها رو جواب میدن خیلی بیشتر خودشونن تا متن اصلی و خب آره اگه خیلی تفاوت وجود داشته باشه یا بی تو تو ها باشه باعث بی‌اعتمادی میشه این به نظرم مختص وبلاگ نیست که مثلا بگیم چرا توی بیان همه با هم این جولین هر محیطی که یه تعدادی آدم توش باشه یه نمونه ای از جامعه‌های جامعه های بزرگتری که آدم توش هستند که ما بگیم این مشکل رو میخواییم توی بیان لفش کنیم به نظر من شدنی نیست باید خیلی میقتر رفت بشه. درسته که آدما ممکنه توی وبلاگ هاشون با آدممه ها که تو زندگی واقعی هستن متفاوت باشن ولی به نظر من در مجموع همون همونن نمیم چطوری بگم خب ببین عزیزم، من الان این قضیه به این شدت شده که توی وبلاگ نویسی بعضی از بلاگرها برای بقیه بلاگرها مشکل درست میکنن و اونقدر اذیتشون میکنن. که باعث رفتن اونا میشن مثلا میان یه خشونتهایی رو پشت صحنه تنظیم میکنن و رخ میدن که اون وبلاگ نمیشتن نهاد خسته میشه تسلیم میشه دلش میشکنه و از محیط میره و خداحافظی میکنه و میره بعد بعد خود اون آدمایی که باعث رفتن این آدما شدن میان و میرن توی لباس میش و می نویسن که و پست انتقادی می نویسن که آقا این وبلاگ نویسی خیلی وقت رونق نداره مرده چرا کسی تکون نمی خوره، چرا همه دارن میرن چرا مثلا اینجوری شده چرا توش پویایی وجود نداره یعنی پشت سر یه کار دیگه میکنه توی روبرو میاد اینطوری نشون میده که نگران قضی است در صورتی که خودش یکی از های به وجود اومدن این اتفاقه تا حالا ما اینطور آدم برخورد داشتی یا نه با اینکه کسایی که خوشونت انجام میدم تا حالا باشون برخورد داشتی؟ تا حالا به خودم حمله این مدلی نشده ولی متاسفانه بله دیدم به نظرم کار کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اون کسی که مورد این حمله قرار گرفته رو یه جورایی حمایتش کنیم، بهش روحیه بدیم. بله بله درست کاملا با تو موافقم. و نشون بدیم که اگه دشمنی داره، دوستایی هم داره. چیزی که برام خیلی مهم بود این بود که توی دوست داشتم توی این گفتگو به این قضیه اشاره کنم و بدونم که و نشون بدم که من متوجه شدم که این قضیه هست و ما داریم اینا رو میبینیم. این اتفاق واقعا داره میفته و من خیلی دوست داشتم بهش اشاره کنم و در مورد چون حرف بزنم و نه تنها فقط نظر تو بلکه که من با همه کسایی که باشون میخوام صحبت کنم و گفته و کنم این, این سوال رو را ازشون میپرسم چون اگر راجع بهشون حرف زده نشه دلیل نمیشه که اینا وجود ندارن اینا کاملا وجود دارن هستن کارشون رو میکنن و متاسفانه الان عامل این اتفاق این اتفاق شدن که الان توی این دنیا همه از دیگه یافت شبهش دارست دیگه بعدشون میاد بیعتمادی هایی شکل میگیره و آدما ها دائم شروع میکنن به داوری کردن مثلا توی اولین پیش داوری میکنن میگن این هم حتما یکی از اون کسایی که میخواد خوشونت کنه با این صحبت ها. یعنی بیعتمادی میاد پایین اما تسفانه هنوزم هستن و گاهی شنمش کرد. یکی از چیزایی که خیلی برای من جالبه اینه که تازگی‌ها یه سری افراد هستن همین میگن که وبلاگ نویسی این نیست، وبلاگ نویسی اونه. من میدونم وبلاگ چیه، به نظرم اصلا وبلاگ نویسی تعریف خاصی نداره. انگار که دفتر خاطرات شخصی که حالا ما تصمیم گرفتیم با چند تا خواننده به اشتراکش بذاریم. آره، درست دقیقا این اینا رو من منم خیلی یاد دیدم که میان روحیار رو از بقیه میگیرن و فقط ادعاون یعنی هیچ دیگه نیستن متاسفانه. این آادما متأسفانه خیلی خوشونت میکنن خیلی نظرات کی میدن انتقاد های B و اساس میکنن انتقاد یه چارچوبی داره شاید نوشتن وبلاگ خیلی چارچوب نداشته باشه ولی انتقاد کردن یه سری چارچوبی داره و آدم ودی سری انصاف ها رو رایت بکنه. اینا قان کارشونی نمیان گیر میدن الکی نظر های میدن ترول میکنن و اذیت می کاملا با ات موافق هستم و فکر کنم هر کسی که هر چیزی که بخواد میتونه توی وبلاگش بنویسه و ماها در حدی نیستیم که بیایم بگیم آقا تو این کار درسته یا نه مثل این که مثلا یکی داره موزیک مثل این که مثلا محسن یگانه بیاد به رزا صادقه بگه موزیک پاپ این نیست من میدونم چیه تو موزیک پاپ نمیخونی تو فلام میکنی آخه میگم اولا این ما کسی که این حرف رو میزنه یعنی تعریفه این قضیه رو نمیدونه و اطلاعاتش کاملا پایینی که میاد این حرف رو میزنه و متصفانه از این نادانهای به استلاف فکر میکنن دانا خیلی وجود داره من نمیگم اذیت شدم ولی خب من پوست کلوفتم من بیشتر از 16 ساله توی این کارم ولی خیلی دیدم که اینا میران توی وبلاگ های کسایی که تازه شروع کردن یه ساله دارن می نویسن خب منم از رو ساله اول شروع کرده بودم خب کپی میکردم. وبلاگ منم اونصال وبلاگ نبود ولی خب کسی نب... کسی نیومد منو تحقیر کنه بگه وبلاگ این نیست. همون اومدن یواش یواش اول به من احترام گذاشتن و همون کپی ها بعد یواش یواش اومدن منو ساختم و گفتن تو میتونی خودت بنویسی. شاید خودت راجع یه موضوع قشنگ از این چیزی که کپی کردی نوشتی. و این شد که من رشد کردم ولی خب اینا یه سری آدم به نظر من تازه از راه رسیدن که مثلا یه چیزی پونزه سال وجود داشته اینا تازه یه سال وارد قضیه شدن و میخوان فکر میکنن یه شبه میتونن دانای این قضیه بشن و به همه ایراد بگیرن و فکر میکنن کلن میتونن همه چیزو تغییر بدن و خودشون همیشه استاد اعظم همه چیز هستن کسایی که وارد افراد خاصی هن دیگه اینا تو اینترنت هم زیادن من میخوام خب اسم مثال بزنم ولی خب فکر میکنن خیلی ایده دارن فکر میکنن هر چی که خودشون میگن درسته عملا تعریف کلی از یه چیز دارن تعریف جزئی ندارن تعریف های دارن و فکر میکنن تعریفای های تعریفای تعریف های تخصصیه و اونا را سر میکنن تحمیل کنن و همیشه فکر میکنن که خیلی مثلا چیزا دیگه اینا خیلی شاخن مثلا وارد پول میشن فقط نتورک مارکتینگ و اینا اختراع میکنن یا مثلا از این کسایی که فقط انگیزه میدن و با حلوا حل انتظار دارن دهن شیرین بشه فهم میکنن دیگه خیلی بلدن دیگه اینا پروفوسورن. همه فقط باید از اینا یاد بگیرن و همه باید مثل اینا بشن از این جهت خب با موافقم ولی و فکر میکنم که بلاگران نباید به این طور آدما توجه کنن ولی خب اکثر بلاگرای جدید رو اولا کسی نمیشناسه چون اینا هنوز خیلی دیده نشدن و وقتی که قربانی خوشونتا میشن چون کسی هنوز اینا رو ندیده اینا توی سکوت میرن و حتی دیده نمیشه من خیلی از رو دیدم که مثلا 20 تا تا پست داشته همه 20 تا تا پستش نهایت دو تا نظر داشته بعد همش گفته که آره من بد می نویسم. اینجا مخاطبم زیاد نبود فلان بود من رفتم، حرفای من ارزش ندارن من رفتم و خیلی دیدم من, من اینطورین چش که محدود بهش ستاره هایی باشم که گوشه ای به روشن میشه. من میرم میچرخم اینترنت رو و می همه رو. و از این جهت خوب این تازه وارد متاسفانه چون نه کسی رو می شناسم من کسی اینا رو می میشناسه و این رو دیده اینا وقتی یه قربانی خشونت میشن، میزنن کنار میگیری منظورمو؟ بله متاسفانه و چون جدیده آشنایی نداره سخت برگردوندنش. آره درست فهم کن چطوری میشه مبارزه کرد باشون. خب ما به جز که بهشون بگیم اذیت نکنید خودتونو جای اونا بذارید بنازم کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. منظورم از مبارزه این نبودش که به این حمله بشه. چون این آدما اولا اینکه توی ظاهر دیده نمیشن کیان. خب همه‌شون تو کامنت‌های خصوصی این حمله صورت می‌گیره یا اگر تو کامنت‌های عمومی هم حتی صورت بگیره و آدم دیده بشه با حمله کردنشون چیزی درست نمیشه. چون اولا یکی دو تا نیستن دوباره من که بعضا اسمن فیکن و دوباره میرن یه اسم جدیدی رو برای خودشون دست و پا میکنن دوباره از اول میان کارشون انجام میدن چون ترول کردن همینه دیگه یه ترول رو نمیشه هرگز شکست داد ولی مبارزه از این جهت گفتم که مثلا ما بقیه رو بیشتر ببینیم این تازه تازه‌واردا رو بیشتر ببینیم حمایتشون کنیم فیدبک بذاریم اصلاحشون کنیم ببینیم همدیگه رو اگه ما همدیگه رو ببینیم و اتحاد داشته باشیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم ترولی نمیتونه ما رو از میدان به کنه نظر من اینه و این تنها راه درست مبارزه با این ترولا به نظر من دقیقا خیلی خوبه که به وبلاگ نویسا توجه بشه و اگه یه مطلبی رو دوست داریم یه بازخوردی بدیم. درسته فکر میکنم این متن این قسمت گفتگومون خیلی طولانی شد و امیدوارم های عزیزی که این فایل رو میشنونن اگهشون اگه خودشون وبلاگ نویسن یکم فکر کنن که اگه میخوان این دنیا نابود بشه اگه نمیخوان این دنیا نابود بشه اینقدر بقیه از عزت نکنند و بذارن هر کسی این اجازه رو داشته باشه که تریبون خودشو داشته باشه. و صفحه خودشو داشته باشه و خودش بنویسه یعنی نیان و همه رو نگن که آقا تو دهن تو ببن همه رو قط نکنن بذارن این اتفاق بیفته این راه ادامه پیدا کنه و ادامه دار باشه به نوعی. دیگه زیاد روی این قضیه نچرخیم که امیدوارم به خودمون حمله نکنن و ما رو مورد حمله و مرمورد لطفشون قرار ندن و من متاسفانه خیلی بلاگیرها رو دیدم که بقیه ها رو میکنن ولی خودشون پشت نقابه پنهان شدن و خیلی این اذیت کننده است از این جهت که من منظورم از این حرفی نیست که من میدونم کیه ها خب من مثلا نمیتونم بگم اینه چون نمیدونم واقعا کیه منظورم من از اینه که میدونم اینه که من با خیلیا صحبت کردم اون آدما اسم ندادم ولی گفتن بقیه بلاگی را این کارو با من کردن و من اونجا متوجه شدم که متاسفانه این کرمه از درخته ولی خب اگر این بخش خیلی طولانی شد من فکر میکنم دیگه بگذاریم ازش خیلی بهتره کلا همه جا این جواب میده کافی خودمونو جای هر آدم دیگه بذاریم و ببینیم که دوست داریم چه برخوردی همون بشه خب عزیز مسئله اینجاست که ما میتونیم بهشون بگیم ولی خب واقعا اونا خودشون رو نمیذارن جایی کسی دیگه اه و اه نمیتونن این رو درکش کنن ولی خب من نظرم اینه که بهتره به اونایی که دارن مورد قرار میگیرن اونا رو بیشتر اصلا همدیگر رو کلن بیشتر ببینیم و اتحادمون رو ببریم بالا خوب بهتره که بچرخیم از این مسیر و از این گفتگو و بریم یه قسمت دیگه نظر تو چیه؟ آره خیلی صحبت کردیم در این مورد اه... دپرس. اولش گفتم میخوام این سوال مشترکی که اصلا هم از تو میپرسم از بقیه کسایی که قرار باشون صحبت بکنم میخوام بپرسم و بعد بحث شد فراموش شد اینه که چرا ما بلاگرها اکثرا شدیداً ترجیح میدیم هیچ آشنا یا خانواده یا کسایی که کلن منظور میشناسن ما رو. یعنی تو دنیای واقعی ما رو میشناسن ما رو نخونن و ما راحت نیستیم از اینکه اونا ما رو میخونن. چرا برمون این قضیه خیلی سخته و ما میایم یه وبلاگی رو مینویسیم و با کسای ارتباط برقرار میکنیم که عملا قریبن آشنای ما نیستن که و بعد از تو قریبگیشون با ما آشنا میشن و ما نوعی راحت میشیم. این با غریبه ها به راحت تاریم. به نظر چرا این اتفاق میافته؟ به نظرم توی خانواده و آشنا ما یه چیزایی را رایت میکنیم که توی وبلاگ ممکن رایت نکنیم. مشابهش مثل اینه که مثلا بابات پاشه بیاد تو گروه دوستات بشینه و های شما رو بشنوه حرفاتونو بشنوه و خب اینو اگه تصور کنیم به نظرم عجیبه آها آه درسته اه ولی خب من چند تا از دوستام هستن که ویبلاگ می میخونن و مشکلی هم با موضوع ندارم آره موافقم و منم فکر میکنم از طرفی چون اطرافیان شخص خودم مثلا چون نمیتونن پوستا رو درک کنند و به خاطر اینه که ما خیلی عذیت میشیم و اصولا چون بیشتر مورد قضاوت قرار میگیریم برای اینه که زیاد دوست نداریم. البته خب من مخلص خانواده خودم هستم. <تصفيق> چون ممکنه تصادفاً بیان و این این بخونم و این فایل گوش بدن و بعد هم درد سر بشه. <تصفيق> من مخلصشون هستم. هر وقت دوست داشتم. میتونن وب منو بخونن فقط اگه قضاوت نکنن. من مشکلم با قضاوت کردنه. اگه قضاوت میکنن قدمشون کاملا روی چشممه. و فکر می‌کنم برای من علت اصلیش که این در کردن وجود نداره چون فضاها متفاوته برای همین یه مقداری از جهت قضاوت که حالا پوستایی مثل آموزش و اینا که حالا به کنار ولی این چون فضا خیلی فرق میکنه یه مقداری درکه سخته و, و به همین علتی که خب مسلما دوست نداریم که بخونن ولی اگه خوندنم قدمشون رو چشمه من خودم یکی از آرزو هم اینی که خب دوستان بیان تو وبروگم نظر بذارم خب از قضاوت واهمه دارم حتی اینکه دوستان وبلاگم اون میخونن باعث شده که احساس کنم در دسترس ترن شاید نتونم مثلا چند ماهیکیشون رو ببینم ولی به راحتی از اون دغدغه ای که دارم آگاه میشه. شاید حتی روم نشه بهش پیام بدم و احساس کنم مزاحمم. ولی وقتی تو وبلاگم می مینویسم ممکنه اون در اون مورد با من صحبت کنه و به نظرم این خیلی خوبه و خب فرق میکنه با خانواده واقعا فر میکنه. اینا ممکنه باشه ولی خب مثلا من اگه احساس کنم که راجع به این موضوع لازم با مامانم صحبت کنم خب میرم باش صحبت میکنم اون چیزایی که می نویسم و شاید احساس میکنم که مثلا لازم نیست با خانواده مطرحشون کنم و یه حتی ممکنه ناراحتشون کنه ما ممکنه عمیقا از این موضوع احساس ناراحتی بکنم و خب نخوام فعلا کسی بفهمه و ناراحت بشه خب میتونی بلاگینگ یا گلند ویبلاگ نویسی رو تعریف کنی؟ اصلا یه بلاگر یا ویبلاگ نویس کیه به نظر تو؟ به نظرم همونطور که ویبلاگ ها موضوع مختلف دارن نویس هم تعریف های مختلفی دارن مثلا یه نفر ممکنه ترجیح بده یه و ادبی خیلی خوب و جمع کنه و یه کلم هم خودش ننویسه این آدم هم خب ویبلاگ نویسه یه یه نفری که مطالب علمی عل اما من برای خودم وبلاگ از اول یه همونطور که گفتم یه دفتر خاطراتی بود که حالا به چند نفر اجازه دادم که بخوننش و خوشحال میشم از اینکه میخونن. به نظرم کافیه که یه آدم تا یه حدی بتونه بنویسه یه جوری که مخاطب قلمش رو دوست داشته باشه. البته من خودم هیچ برخ از قلم خودم راضی نبودم ولی خب بقیه به من لطف داشتن. چند نفری ویبلاغ می میخونن ازش متشکرم. ولی به نظر من همین کافیه که چند نفر نوشته رو دوست داشته باشن حالا صرف هم اینکه خودت مینویسیشون یا یه آرشیو خوب داری هر کسی که وبلاگ مینویسه و وبلاگش مخاطب داره به نظر من وبلاگ نویس خوبیه درسته باید موافقم و فکر میکنم آره هر کسی یه وبلاگ نیمست اصلا وبلاگ خودش تعریف میشه و صرفا کسیه که تو وبلاگ بنویسه من نظرم اینطوریه چون بعضی خب تعریف خیلی پیچیده و عجیب غریبی ساختن ولی خب به نظر من صرفا این آدم صفحه داشته باشه به یه بلاگره بعدم هم خب همش هم لطف نیست من راجب به وبلاگ تو درسته خب به بعضی از نمشته ها زیاد اونطوری فکر میکنم خیلی خوب نیست ولی بعض از نمشتاد واقعا خوبه و من خیلی دوستشون دارم و خب من دنبالت میکنم و میخونم ات هنجد واقعا به تبریک میگم خیلی خوبی و اینکه ایدالت برای ویبرای خودت چیه آیا ایدئالی اصلا داری یا فقط صرفا داری می من خیلی دوست دارم که توی قسمت کامنت ها بحث را بیفته ملت با هم سمیمی باشن چون اکثرا. webdriver که میرم میبینم دنبال کننده هاشون با دنبال کننده های من خیلی مشترکن و خب خیلی همدیگر میشناسن و همیشه اینو دوست داشتم که مثلا من بیام کامنت یه نفر رو بخونم بهش جواب بدم بعد صاحب وبلاگ بیاد به کامنت من و اون جواب بده و یه حالت ارتباطی بین مخاطب ها ایجاد بشه اینو مثلا نمونه اش توی وبلاگ جناب دوچار هستش من اینو خیلی دوست دارم آره درسته اولیش خب باعث سیستمیه به کد برمی‌گرده چون که خود خود بیان این همچین قابلیتی رو نداره که آدم بتونه نظرات تو در تو بده مثلا به نظر فلانی که به نظر فلانی جواب داده جواب بدی خب اگه این امکان وجود داشته باشه خیلی خوبه ولی خب این که ارتباط بین بلاگرها وجود داشته باشه که خب من باها کاملا موافقم خیلی هم دوست دارم و او ای کاش یه روز این اتفاق بیفته ای کاش ما برای نقد کردن همدیگه پست بزنیم در نقد پوست های همدیگه پست بزنیم همدیگه رو اصلاح کنیم و همدیگه چیز می زیاد بدیم بحث کنیم خودمون رو ارتقا بدیم همه اینا یه اتفاقات مهمیه که خیلی وقت دیگه تو وبلاگ همه فقط یसरी پست میدن بقیه رو میاد نظر میده بعد بقیه رو پست میدن اون رو میره نظر میده و این بحث خیلی اتفاق نمیفته خیلی از این جهت آره فکر کنم ایداله اینه و منم خودم با کام کاملا موافقم و خیلی دوست دارم و ای کاش اینطوری بود واقعا ای کاش اینطوری بود عزیزان یه خرمگس یه خرمگس اینجا هست میره میاد امیدوارم که صداشو میکروفون نکشه و من خیلی سعی کردم بیرونش کنم ولی ظاهرم بیرون سرد اتاق گرم و مگستان کللا گرما دوستدارن میچرخه دیگه خلاصه یه صداش کشید من محذرت میخوام کارش نمیتونم بکنم نمیره بیرون من یه مدت خیلی می نوشتم بعد برایلی مدت احساس کردم که بللاگم تر شده با خاطر که زیاد نوشتم و خود تصمیم مطال به اون کم کنم و اینکه کمتر پراکنده بنویسم مثلا یه مطلب پنج خطی می نوشتم که شیش تا پی‌نوشته کاملاً بی‌رب داشت. الان مدتی اینو رایت می‌کنم. ولی چیزی که دوست دارم از این بعدم اتفاق بیفته اینه که یه ذره مطالب ادبی تری بتونم بنویسم. یه ذره از روزمره نوشتم بیام بیرون، یه چیزایی بنویسم که از جهت ادبی ارزش منتر باشم او پس وسواست رو بالاتر بردی خیلی خوبه ولی ادبی نوشتند نمیگم تا میگم مخالفم ولی همینطوری نوشتند به نظر من قشنگه آخر خیلی ادبی نوشتنم فکر میکنم که خب بعضی از مخاطبای خاصت رو ممکنه از دست بیدی. نظر خاص منه چون که ادبی نوشتن البته خب صدقه خودته و خب دوست هدف برای وبلاگی خودته ولی من شخصا ادبی نمیشتن نیازمند اینه که آدم واقعا ذوق و قریحه ای داشته باشه. من خیلی اونو آره میبینم که ادبی می نویسن ولی در نیومده است. آدم لذت نمیبره از خوندنشو. میگن من من خودم میگم که خب مثلا بلاگر عزیز تو که اینو میتونستی خیلی راحت با زبان محاوره ای بگی، آدم کیف کنه. چرا علکی ادبیش کردی ولی بله خب حالا وصفاس بالا بردن خیلی خوبه وصفاس تو بردی بالا خیلی خوبه خب صدیقه وبلاگ خودتون امیدوارم توش موفق باشی. بله وصفاسم بیشتر کرد <تصفح> <تصفح> فکر میکنی وبلاگ نمشتم پیش زمینه ذهنی میخواد پس زمینه زهنی میخواد یا نه فقط صرفا یه چیزی بنویسی یا نظرت رو از یه اتفاقی بگی نیازی به یه پیش زمینه ای نداره. نظر چیه؟ به نظرم پس زمینه خاصی نمیخواد ممکن آدم برای مدت تصمیم بگیره راجب چیزای دیگه بنویسه ولی خب دیگه ساده ترین کار همون روزمررا نویسیه که میشه باهاش شروع کرد و به مرور هم با فضای وبلاگ بیشتر آشنا شد هم با سلیقه مخاطب و خب تغییر داد یا تغییر نداد. خیلی عالی نظرت راج. خود چیه من با خود سانسوری تا حد خوبی موافقم برای اینکه همونطور که گفتم اصلا معلوم نیست کی داره وبلاگ منو میخونه و خب من نباید هرچی اطلاعات از زندگیم دارم و اونجا بذارم خیلی راحت میشه سوء استفاده کرد من بعد مدتی آرشیومو رمزدار میکنم که هر کس که وارد میشه فقط چند اخی رو بتونه بخونه فکر میکنی آدم باید توی بهش خود کنه یا کلا آزاده این در کل نظر درباره آزادی توی وبلاگ چیه چون بعضیا فکر میکنه آدم باید کمه خودشو محدود کنه و هر چیزی ننویسه چه میدونم وبلاگ مطالب خاله زنگ نداشته باشه یا مطالب خارج از عرف نداشته و یعنی عرفی برای خودشو میسازن مثلا فکر میکنه اگر توی وبلاگ مثلا آموزش مسائل جنسی باشه دیگه اون وبلاگ نیست و اون وبلاگ ارزش نداره آدم هر حرفی رو حق نداره تو وبلاگ بنویسه و وبلاگ یه چیزی مثل مثلا کتابه فقط هم کتاب تو صدیقه اون آدم ها و آدم باید یه مقداری خودسانسوری داشته باشه یه نفر ممکنه موضوع وبلاگش این باشه من نمیتونم بیام بگم ننویس ولی دیگه بالاخره باید چیزایی رو رعایت کنه دیگه. دیگه مثلا بعضی از داستانه که ممکنه توشون توهین و داشته باشه و اونا رو نباید بنویسی و آدم باید خیلی مؤدبانانه اینا رو بینی و به قول معروف خود سانسوری کنه. نظرت کنن راجع سانسور از بیرون یا خود سانسوری توی وبلاگ چیه؟ آیا کلا باش موافقی، کلا باش مخالفی یا نظر خاصی نداری یا چی؟ ولی خب بعضی هم دیگه خیلی آزادی و جدی می‌گیرن. مثلا میان شروع می‌کنن فش نوشتن و بد و بیراه گفتن و کلمات خوبی استفاده نمیکنن. به نظر من دیگه در این حد رو باید همه را آیت بکنن من همیشه فکر میکردم که محیط وبلاگ محیطیه که خیلی سالمتر از جاهای دیگه است ولی خب به مرور احساس میکنم داره این کم میشه آها آه پس تو با اینطور نوشت تو پس تو فکر میکنی خودسانسوری یه ذرهش خوبه خب پس تو که باید خودسانسوری وجود داشته باشه آدم توی محدوده خاصی بنویسه چون بعضی بعضیا فکر میکنن که مثلا کسی از این که از یک روز یه قرار عاشقانه ای داشته مثلا خیلی خالصانه که و اینجاش تو وبلاگ نیست و نباید بنویسه تو با اینم موافقی و میگی که آدم باید اینم ننویسه نظرت چیه من خودم یه چیزایی رو رعایت میکنم ولی نمیتونم به بقیه بگم رعایت کنید نهایت اینه که میگن خب وبلاگ خودم هر دلم بنویسم تو نخوند درسته آره دقیقا درسته پس به نظر تو هر کسی آزاد هر چی بنویسه همه هم آزادن که اون رو بخونن یا نخونن آره حرف درسته موافقم خیلی هم کامل بود موافقم منم فکر میکنم که هر کسی می‌تونه تو وبلاگش راحت باشه حتی فوش هم بنویسه و ما مخاطبا میتونیم انتخاب کنیم که اون رو بخونیم یا نخونیم ولی واشینی حقی رو نداریم که بیایم بگیم وبلاگ اینه یا اون یا اینطوری باید پست بنویسید یا اینطوری نباید پست بنویسید ما در نهایت فقط میتونیم اونو نخونیم همین ولی اینکه آره با این جهت با موافقم ولی از یه جهتی هم نقد دارم به حرفت ولی اینکه خب اگه اونطوری باشه که خب به نظر من محدود میکنه اون وقت نویسنده چون برای اینکه بخواد توجه مخاطب رو جلب کنه هی باید خودش رو سانسور کنه چون عامه مردم دیگه یه چیزایی براشون عادی نیست مثلا یه فیلمی اتفاق میفته توی وبلا مثلا یه داستانی رو طرف داره ربایت میکنه. اصلا نوشته خودم. من مثلا اومدم یه داستانی نوشتم. بعد توی داستان دو نفر با همدیگه دعوای شدید میکنن. بابا توی دعوای شدید که طرف نمیتونه بگه خاک بر سرت چرا مثلا مداد من را برداشته ای؟ اونم میگه دندت بسوزد میخواستی آن را روی میز مگذا دعوای امروزی وقتی که تو خیابون در حد زنجیر کشیدن و اینا دیگه نه خیلی دقیق اشاره کردنم خب یه مقداری زشته قبول دارم نوشتر کسیف میکنه ولی در حد اینکه که خب نشون بده واقعیت چیه که خب باید بگیدی باید حتی دقیق بگه نفهم گو ساله چه میدونم این اینا رو باید بگه چون این به داستان واقعیت میبخشه و حتی دوستای خیلی صمیمی من به من این انتقاد کردن گفتن نه باید داستانت فوش داشته باشه اینا چیه ولی خب من فکر میکنم هرچی که اون داستان واقعی‌تر به نظر بیاد به حقیقت نزدیک‌تر باشه بهتره توی هیچ جا تو دعوا گل و بل بل, بل پخش نمی‌کنن. یا مثلا یه آدمی که سواد نداره مثلا راننده اوتوبوسه مثلا یه لحن خاصی داره. بعضی وقتا نمیتونه مثل یه دونه چه میدونم استاد ادبیات صحبت کنه که گاهی وقتی یه خاصی استفاده میکنه مثلا گاه هم مثلا میگه که نمی... نمیاد بگه که من از اینکه امروز پنج ساعت رانندگی کردم مثلا عذیت شدم میاد مثلا میگه خانم امروز پدرمون در اومد دهنمون سرویس شد فلان شد این یه مقداری به واقعیت نزدیکتره این کارت به اصطلاح مقوایی بهش میگن دیگه اگه آدم اینطوری بنویسه این کارت واقعی نیست کاملا معلومه ولی خب از این جهت من میگم که اگر به ترس این که مخاطب خب براش این خیلی تابوئه دیگه میگه چرا دور فوش میده توی داستان داستانش کثیفه تمیز نیست بعد من به خاطر مخاطب مجبورم خودم رو سانسور کنم پس اون حالت طبیعی اون نوشته خارج میشه از این جهت به حرف انتقاد دارم من فکر می‌کنم که از این جهت باید آزادی وجود داشته باشه و آدما باید بگذرن تا یه حدی شو یعنی زیاد خیلی گیر نکنن رو قضیه به نظر من خودسانسولی فقط شامل این نمیشه که چی بنویسیم شامل این نمیشه که چی بخونیم حالا درسته ولی خب آخه مخاطب من باید بعضی وقتا زیر سیبیلی ردش کنه دیگه من ممکنه 10 تا مثلا پست آموزشی بزنم یه که خواستم داستان بنویسم حالا توی داستانم سه چهار تا فوشم بینی باید مخاطبین آزادی رو به یه بلاگر بده اگر وقتی یه وبلاگ نی‌سی رو داره دنبال میکنه دیگه بعد همه رو دنبال کنه نمیتونه گزینش کنه بگه مثلا من این قسمتشو دوست دارم می‌خونم این قسمتشو اصلا ولش کن. حمایت کنم حمایت نمیکنم اینه من من با فکر میکنم باید این نداری از این جد آزادی عمل داد و چی میگن این رو اهرام فشار قرار نداد ازش که مثلا این احرم فشار باشه که مخاطب خودشو سانسور کنه حتی راयत چیزی هم بگم مثلا من همیشه سعی میکنم که چیزی رو رعایت کنم ولی یه روز که تصمیم میگیرم دیگه رعایت نکنم به نظرم حق مخاطب یه جوری ضایع میشه اون آدم به من اعتماد کرده و مثلا دو ماه داره منو میخونه انتظار نداره که یه روز بیاد با یه پستی که پر از فحش مواجه بشه ولی خب بعضیا کلا سبکشون همینه. درسته ولی خب مخاطبم حق نداره بهت بگه تو اینطوری بنویس اگه ننویسی من میرم. یعنی تو رو محدود کن اگه بره نمیتونم بگم چرا رفتی. حق ندادم ناراحت شم. تو فرض من در واقع من خودمو محدود کردم. یه جوری انگار مخاطب عادت دادم به این سبک نوشتن. فکر میکنم خیلی حرف زدیم. یه استرات کوتاهی باید بکنیم. دوستان عزیز خیلی ممنونم که با من همراه هستید، دارید ما رو گوش میدید. اگر موافقین با یک وله رادیویی میگن و یشتباه کنم یک وله بریم و برگردیم باز در خدمت شما هستیم برمیگردیم با ما همراه باشید این راه بر میگو غیر از ما تو دنیا کیا میشناسی مثل تو عاشق و مثل خودم احساسی دیوانه تر از من مگه جایی هست مگه جز دل به تو بستن دیگه راهی هست دیگه دل دل نکنیم دل مگه دل میشه نباشی جای خون تو دلم آتیشه دیگه باز کن روی قلبم بزاد از دستاتو منم عاشق تن یا تو دیگه هرچی تو بگی هرچی دلت میگه بیا ثابت کنی من به بخم دیگه بیا باز کن دیگه وقت شده داد تا مو بزنیم تو بارو خب برگشتیم و خیلی ممنونم که هنوز دارید به ما گوش میدید و من تایم نگرفتم نمیدونم چقدر از این گفته من گذشته فیرم کنم حدودن یه،, یه, یه ساعت و روپی یه ساعت و نیمی گذشته باشه و خیلی ممنونم که داری دنبال میکنید و موزیکی که خدمتتون پخ شد اثر با آقای مهین راهبر بود یکی از موزیک های خیلی قشنگشون بود اگر دوست داشتید میتونید از کانال خودشون رو دانلود بکنید به لحاظ کوپیرایت باید اعلام میکردم این موزیکی که پخش شد و امیدوارم که لذت برده باشید دیگه آهنگ کامل شخاصید میتونید اسمش رو سهش کنید و از کانال ایشون این موزیک رو دانلود بکنید خیلی ممنونم که در همراه ما هم هستید و دارید گوش میدید و من مشغول صحبت با یکی از بلاگیره هستم که خیلی بهش ارادت دارم و دنبالش می کنم دارم با الهای خانوم صحبت می کنم. خب به گفتگونمون برمی گردیم چه کتابی رو دوست داری؟ یعنی اگر ازت بخوام اون کتاب رو به قرض بدی دلت نیادون رو به من قرض بدی اسمان کتاب چیه؟ چه کدوم از کتاباتو خیلی دوستش داری؟ و میتونی راجب اون کتاب حرف بزنی یکم برامون؟ و بیشتر معرفیش کنی؟ اتفاقا من کتابه که دوست دارم و غرض میدم و دوست دارم بقیه هم بخونن حالا اعتماد میکنم به اینکه که تمیز نگهش دارم <تص> خیلی ممنون اکثرا داستان میخونن و داستان دوست دارم و فکر هر داستان میتونه جذاب باشه، البته خیلی اهل داستان عاشقانه نیستم، داستان فلسفی دوست دارم مثل جوز از کل مثلا. ولی اینکه یه داستان خاصی مدن نظرم باشه که خیلی دوستش داشته باشم اینطوری نیست. کتاب های مثل باد, باد باز و صبحشون رو خیلی دوست داشتم جز از کل رو دوست داشتم ملتش گاه زمانی دوست داشتم بعدش کتاب پله پل پل تا ملاقات خدا رو خوندم، و به این رسیدم که چقدر تحریف شده زندگی نامی مولانا ولی در کل کتاب خوبی بود آره پله پله تا ملاقات خدا کتاب خیلی خوبیه اثر دکتر عبدالحسین زرینکوب اگه اشتباه نکنم بسیارم پیشنهاد میکنم خیلی این کتاب رو بخونن و خیلی خوبه کتاب های خوبی رو خوندی و میتونی از کتابایی که توی کتاب دم دستته دهدی یه پاراگراف Uh, یه پاراگرافی که خودت خیلی دوستش داری و خب باش خیلی ارتباط برقرار کردی برامون بخونی و ما رو مهمون اون یه تیکه از کتابی که خیلی دوستش داری و دم دستت بکنی. خیلی لطف میکنی و خیلی ممنونم که ما رو مهمون میکنی بخون برمون. الان دارم کتاب طریق بسمال شدن رو میخونم یه مدت طولانی یه چه چط نمیشه یه تیکش رو که خیلی دوست دارم میخونم الان بهت یک نصیحت می شاید شایدم یک وسیعت. آن چیست؟ روز شمالی مکن. حتی اگر فکر میکنی در محلک افتادهی روز شمالی مکن. حالا هم لحظه شمالی مکن. شب نمیتواند تمام نشود. طبیعت شب آن است که برود رو به صبح. نمیتواند یک جا بماند. مجبور است بگذرد. اما وقتی تو ذهنت را اسیر گذر لحظه ها کنی، خودت گذر لحظه ها را سنگین و سنگین تر میکنی. بگذار شبم راه خودش را برود. خیلی ممنونم که ما رو مهمون یه پاراگراف از کتابی که دوستداری کردی یا حداقل کتابی که زیر دستته. چون وقتی که من ازت خواستم منو یه پاراگراف مهمون کنی، خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر کردم این پاراگراف رو خوندی برام و حد زدم شد کتاب زیر دستت بوده باشه. ولی خب ارزشمنده خیلی ممنونم که ما رو مهمون این پاراگراف خیلی قشنگ از کتاب طریق بسم الله شدن کردی خیلی متشکرم ازت دوستش دارم خب اگه دوستش داری که خب چه بهتر خیلی خوبه و اینکه یک کارکنی موسیقی انتخاب کن الان برامون و وقتی که این گفتگو تموم شد به عنوان اگه اشتباه نگم اصطلاحش حسن ختام به عنوان حسن ختام و پایان این گفتگو به عنوان تیتراج پایانیش ما این موسیقی رو برای شنمندگان عزیزمون پخش کنیم. یه موسیقی که دوست داری به ما رو مهمون کنی و شنمندگان وقتی که این گفتگو تموم شد گوشش بدن رو بهمون معرفی کن تا مخاطبانمون این موزیک رو در انتهای این پادکست گوش بدن. انتهای این گفتگو بشن. من شدیدم به کارهای آقای قربانی علاقه مندم. و تقریبا هر چیوی که میخونن میپسندم. یکی از آهنگاشون که تازگی روش خیلی قفل کردم آهنگ عاشقانه ترک اول آلبوم فروغه که شعرش هم از فروغه و من خیلی دوستش دارم. امیدوارم چنده این آهنگ قمگینتو نکنه و همون حس خوبی رو پیدا کنین که وقتی من گوش میدم پیدا میکنم خیلی ممنونم حتماً حتماً دوستان عزیز وقتی که گفتگومون تموم شد حتماً این آهنگ رو میشنون و این آهنگ که به هدیه تو و به دعوت تو این آهنگ رو میشنون البته اگر این توی آلبوم باشه نمیشه کل موزیک رو توی تیتاژ پایین قرار داد ولی یه قسمتیش رو ما مخاطبین عزیزمون رو مهمون میکنیم البته شما در اصل مهمونشون کردید خیلی ممنونم که من خودم هم صدای عیرز قربانی رو خیلی دوست دارم و کلن به موسیقی سنتی خیلی علاقه دارم خب سوال بعدی که میخوام ازت بپرسم اینه که کلن وبلاگ و دنیای وبلاگ برای چه معنی داره؟ میتونی برامون بگی از این کلست داستان چه حسی داری؟ یو بلاگمو دوست دارم. اولش که شروع کردم بیشتر یه جایی بود که بتونم دغدغه‌های ذهنیمو توش خالی کنم ولی بعد متوجه شدم میتونم دوستای خیلی خوبی توش پیدا کنم. آدمایی که باهاشون در ارتباطم دقیقاً مثل آدمایی که تو دنیای واقعی هستن و برام ارزشمندانن. چیزهایی که مینویسن برام جالبه. زندگیاشونو بعضی وقت دنبال میکنم. اگه کمکی از دستم بر بیاد برات دوست دارم که برام انجام بدم و در کل دوست دارم خیلی ممنونم این حس خیلی متقابله و من هم با خوندنه و به تو خیلی حالم خوبه و در کل تو خیلی دوست دارم و تو خیلی لطف داری و به هم خیلی خوبه و خیلی خوشحالم که همچین حسی رو داری خیلی ممنونم و ما این حس رو از این وبلاگت کاملا می گیریم خیلی خوبه خیلی ممنونم که به همون گفتی و اینکه دنیای وبلاگ و وبلاگ نویسی تا کی الهه و وبلاگ الک رو اگه اشتباه نکنم یا الک اگه درست تلفظ میکنم تا کی دنیای وبلاگ سی الله و وبلاگش رو داره میتونی به جواب بدی. من خیلی دوست دارم که نوشتن رو ادامه بدم چون به خودم هم کمک میکنه تغییراتی که برام اتفاق افتاده رو میتونم ببینم توی وبلاگ خودم ولی خب معمولا هر وبلاگی یه جایی تموم میشه و نمیشه گفت کجا؟ یه روز ممکنه دیگه حس نوشتن وجود نداشته باشه ولی من دوست دارم که بنویسم خیلی عالی امیدوارم این نقطه پایان. نقطه پایان هرگز نرسه و همیشه بتونی بنویسی و بنویسی و بنویسی و ما بخونیم و بخونیم و بخونیم و حسابی لذت ببنیم و هرگز نقطه پایان نیاد و همیشه حسره داشته باشی که بنویسی تا آخر و اینکه فکر میکنی وبلاگ تا ابد هست یا نه یه روزی به کلا به فراموشی سپرده میشه تا وقتی که وبلاگمون رو نبندن یا نپرونن یا رو تعطیل نکنن <تصفيق> خیلی اشاره خوبی بود تا وقتی که آره تا وقتی که نبندن و ما رو تحت فشار نذارن آره وبلاگم هست درسته من دوست دارم که همیشه باشه و فکر میکنم یه چیز ای هست برای خود من هیچ چیز دیگه‌ای نمی‌تونه جای وبلاگو بگیره نه اینستاگرام نه تویتر نه هیچ چیز دیگه برای منم هم همینه و منم هم امیدوارم که همیشه باشه و برای منم هیچ چیزی ویبلاگم نمیشه و خیلی دوستش دارم فخ. شاید یکی از بهونه هایی که میتونم از رو شیرین کنم همین وبلاگم. پس فکر می‌کنی هست خیلی خوبه خیلی خوب ازت می‌خوام یه چیزی بپرسم که از همه هم میپرسم اونم اینه که اگر تو جامون عوض میشد و تو قرار بود با من گفتگو کنی و تو از من سوال بپرسی؟ چه سوالایی از من میپرسیدی؟ بین یک تا سه تا سوال رو انتخاب کن بگو ولی من اینجا جوابت رو نمیدم وقتی که وقتی که پادکست و این گفتگو منتشر شد اون وقت تو میتونی گوش بدی و جوابی که به سوالات دادم رو بگیری اون یک تا سه تا سوال چیه؟ اون سه تا سوال از من بپرس تا من وقتی که این گفتگو رو منتشر میکنم بهش جواب بدم. سوال اول چی باعث میشه که اینقدر وقت بذاری برای وبلاگ چالش‌های مختلف را بندازی و اینقدر علاقه داشته باشی؟ سوال دوم چقدر احتمال میدی برگردی؟ سوال سوم، تا کی می خب مرسی از سوالات. تو پایان این گفتگو جواب میدم که تو الان مسلمن نباید بشنوی. <تصفيق> و در نهایت این آخرین سوالیه که از همه میپرسم و از یه برنامه صوتی خیلی معروف و خیلی بزرگ یه برنامه صوتی که خیلی خودم هم دوستش دارم قرضش گرفتم و از تو میپرسم با یه ذره تغییر و از بقیه کسایی که باشون گفتگون میکنم و اونم اینه که درست اون لحظه و اون وقتی که دیگه میبری و میگه که دیگه نمیتونم بنویسم و ادامه بدم و دیگه بس و نقطه پایان من اینجاست و دیگه کلا حسدی وبلاگ و وبلاگ نییسی اون جوجه زارا ندارم و خواستی کلا بری وبلاگتو ببندی چه کسی چه چیزی یا چه نیرویی اصلا کلا چی تو رو دوباره بلند کرده و وا داشته که از این تفکرت منصرف بشی و بنویسی و ادامش بدی این چی بوده برمون بگو. نظرم دو تا چیز خیلی مؤثره یکی ترک عادت نوشتن کار سختیه آدم وقتی یه مدت می نویسه سختشه که یه هو بذاره کنار ممکنه کمرنگ و پررنگ بشه ولی کنار گذاشتن نظرم سخته آه، آره آره قبول دارم, قبول دارم. یه دلیل دیگه هم مخاطبام هستن مثلا وقتی یه مدت نمی نویسی بعد سراغتو می گیرن یا میری تو آمارا می بینی دائمی نفر هست که خب بعضی وقتا میشه شناخت که کیه این خیلی با آدم انگیزه میده که ا نوشته من چقدر ارزشمند بوده براشون و چقدر خوشحالم که بهشون اهمیت داده میشن عالی خیلی خوبه و در کل نظرت در رابطه با من و این گفتگویی که با هم داشتیم چیه از شما ممنونم شما آدمی هستی که برای وبلاگ و وبلاگ نمیسی خیلی وقت میذاری چالش های مختلف را خیلی لطف داری و خیلی به نظر میکارتون ارزشمند و جالبه و متشکرم مشکهش میکنم خیلی ممنونم در مورد این گفتگو هم امیدوارم که خیلی طولانی نشده باشه و حوصله کسی یا سر نبرده باشه اتفاقا خیلی گفتگوی خوبی بود و حوصله کسی هم سر نرفته خیلی ممنونم که بهم افتخار دادی. با هم گفتگو بکنیم شون فکر میکردم که شاید وقتت پر باشه نتونی صحبت بکنی و خیلی واقعا باید افتخانم بود خیلی به من لطف داری خیلی حرفای قشنگی زدی که قطعا از لطفت خیلی ممنونم و امیدوارم که همیشه در خدمت شما و همه باشم و خیلی ممنونم که در کل کر شرکت کردی اگر حرفی با شدمندگان عزیز و مخاطبان هم داری بگو که یو من به سوالات پاسخ بدم و دیگه این گفتگو رو به پایان برسونی خیلی ممنون و همیشه دوست داشته می با موضوع بکنه <تصفيق> بس که از خود بعد تشکر میکنم بازم و خدافز میکنم از دوستانی که وقت گذاشتن این وایس رو گوش دادن خیلی متشکرم خدافز پاسخ سوالاته سوال اولت خیلی پاسخش سخته برام ولی فکر میکنم چیزی اولین چیزی که برام مهمه و باعث میشه که این کارو رو بکنم خود مخاطبه اینکه دلم میخواد کمک کنم به کسی چیزی یاد بدم چیزی رو که بلدم بگم یا از این حسم میاد که وقتی که یه چیزی رو کشف میکنم یا متوجه میشم این عادتمه کلان تو خونم اینطوریه وقتی یه چیزی رو کشف می‌کنم بو دو از اتاقم میام بیرون به اولین آدمی که در دور من وجود داشته باشه به صورت رگباری خالیش می‌کنم. و میگم راستی میدونی یه همچین چیز با حالی اومده این کار میکنه اون کار میکنه کلا عادت منه و خب این باعث میشه که خب من اینا رو بنویسم و خب یه ویبلاگ فعال داشته باشم شبت یه چیزی رو کشف میکنم راجعه بهش مینویسم همونطور که تو دنیای واقعی وقتی یه چیزی رو متوجه میشم با وجد میام برای بقیه تعریفش میکنم حتی اگه اون آدم متوجه نشه مثلا بعضی وقتا به شوخی این آشنایان خانواده به من میگن که تو وقتی که داری حرف میزنی انگار هندی حرف میزنی من چیزی نمیفهمم چون راجب برنامه نویسی و کامپیوتر این رو صحبت میکنی ولی خب من عادت هم دیگه با باید وقتی که یه چیزی میبینم و به وجد میام مثلا نمیتونم جل دهنم و بگیرم و باید بنیمیسم یکی ای این خود مخاطب کمک کردنش و باش ارتباط برقرار کردن برام خیلی مهمه و این خوب باعث میشه که خیلی کار بکنم بعدم دوست دارم کلان ایده های جدید را تجربه کنم فضایی جدید را تجربه کنم اتفاقات جدید رو تجربه کنم و خب اینم یک دلیلش میتونه باشه و دلیل سوم هم که فکر میکنم من از بچگی دوست داشتم سایت داشته باشم و خب این از بچگی وقتی که من اون زمان که همه با کامپیوتر بازی میکرد من وبلاگ می نوشتم و فکر کنم این دیگه وارد علاقه های اساسی و اصلی من شده که بنویسم وبلاگ داشته باشم یا وبسایت داشته باشم یا کل چون به آIT و کامپیوتر رپ داره فکر میکنم که یکی از دللالی که توش فعالیت میکنم و دلیل آخرین که زندگی خ خب مشکلات زیادی داره. میگم سوالت خیلی سخته هزار تا دلیل داره ولی خب اونایی که الان یادم میاد و مهم من فکر میکنم چون یادم میاد ایناست اینکه زندگی به هر حال پستی و بلندی های داره و وبلاگ چیزیه که حواس من از این پستی بلندی ها پرت میکنه وقتی که من حالم خیلی بد میشه سعی میکنم یه ایدهی بهش فکر کنم و اون رو روی وبلاگم پیاده کنم یا چه میدونم یه کاری بکنم که حواسم پرت بشه و خب این قضیه رو وبلاگ خیلی اثر میذاره و خب وبلاگی که در از با میشه من به این فکر کنم و این صحبت ها اون یا مهمتریناش بودن. من واقعا با خاتبانم و خیلی دوست دارم براشون خیلی احترام قائلم. کسایی که نظر میدن خیلی برای من عزیزن و من دوست دارم هر روز دوستای جدید پیدا کنم با های جدیدی در ارتباط باشم و خیلی دوستای زیادی داشته باشم که باشون ارتباط دارم ارتباط خیلی خوب و حسنه ای دارم. و خب این از وبلاگ میشه از ویبلاگ اینو برداشت و این استفاده رو کرد گرچنان یه مقداری فضا متشن نیجه. یه جوریه خیلی سرده ولی خب من امیدوارم او ادامه میدم این شاید علتش باشه خب این سوال اولت که خیلی سخت بود ولی سعی کردم جوابش بدم این سوال دومت چی بود؟ چقدر احتمال میدم برگردم به کجا؟ خیلی, سو... خیلی سوالت خیلی اه... سوالت چیز بود. اه... اصلا نمیفهمم اگه رو وبلاگ باشه که خب من هستم نرفتم که قرار باشه برگردم. سوالت تصفیه نفهمیدم و خب نمیتونمش جواب بدم و سوال سومت تا کی می نویسم که فکر میکنم تا عبد تا لحظه‌ای که زنده باشم و تا لحظه‌ای که یک سروری وجود داشته باشه که تحت وب کار بکنه و وب وجود داشته باشه قطعا یا ویبلاگ وبسایت من توش وجود داره و فکر میکنم تا زمانی که زنده باشم وبلاگ داشته باشم یا وبسایت داشته باشم و بنویسم بروز کنم تا لحظه ای که بمیرم تا آخرش خب به پایان این گفتگو رسیدیم خیلی ممنونم که بامون با همراه بودید و فکر میکنم در حدود یک ساعت و نیم 1:45 دقیقه تا الان شده یواش یواش بعد از خدمتتون مرخص بشم خیلی ممنونم که به من لطف دارید نظراتتون رو راجع به این گفتگو حتما بنویسید و نظراتتون راجع به من راجع به اینکه گفتگو چطور بود بنویسید و امیدوارم که این گفتگو کسی رو ناراحت نکرده باشه کسی رو اذیت نکرده باشه دوست داشتیم این گفتگو خیلی صمیمی باشه و خب خیلی مهمان عزیزمون لطف داشتن تحمل کردند و وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن به پایان این گفتگو می رسیم همونطور که قول داده بودیم مهمون برنامه ما شما رو یک موسیقی مهمون کردن که این برنامه سوتی رو با این موسیقی به پایان میرسونیم خیلی تشکر میکنم و خدا نگهدار. ای از رویای تو رنگین شده سینه از عطره تو سنگین شده ای به روی چشم من تخین شادیم پخشید از ان